سلام و عرض ادب و خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی با کتاب افسانه‌های اوکراین در خدمتتون هستن داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم می‌کنم از بخش دوم قشته های و جادو و اسم داستان هست کریلو کوژامیاکا و مار آدمخوار. به نام خدا یکی بود یکی نبود زیر گنبه دکه بود، غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. تو کیف پایتخت تخت اوکراین، پادشاه بزرگی حکومت میکرد و کنار این شهر مار بزرگی بود که قزاش جوونای شهر کیف بود. اون مار تمام جوونای شهر رو خورد تا وقتی که نوبت به دختر زیبای سزار رسید. سزار دخترش رو بسیار بسیار دوست داشت و باور نمیکرد که باید اون رو مثل دیگر بیگناه شهر تقدیم ما را آدم خار کنه اما چار ای نبود. پس از ودای غمناک و سوکمندان دختر رو به سمت اقامتگاه مار فرستاد. اما این بار مار از خوردن خوراک همیشگی خودش دست برداشت. چرا که تو نگاه اول آشغش شد و تصمیم گرفت وهاش زندگی کنه. دختر تلاش کرد با نیرنگ و افسون دل اون رو به دست بیاره. روزی از روزها دختر سزار از مار پرسید آیا کسی تو کیف هست که بتونه اون رو بکشه یا نه مار بهش جواب داد تنها کسی که نیروی این کار رو داره جوونیه به نام کریلو کوژامیاکا که در کنار رودخانه دونیپر زندگی میکنه کار هر روز اون اینه که دوازده چرم بزرگ و پهن رو به کنار رودخونه میاره. اون رو به تنهایی میشوره و به شهر برمیگردونه تو با اون چیزهای مختلف بسازه تنها کسی که من از اون میترسم کریلو هستش دختر سزار از اینکه به این راز مهم دست پیدا کرده بود خوشحال شد اما دستش از همه جا و همه چیز کوتاه بود با خودش فکر کرد که چجوری میتونه این خبر خوش رو به سزار برسونه تا کریلو رو پیدا کنه و به جنگ ما را آدمخوار بفرسته تنها مونس تنهایی و بی کسی دختر سزار کبوتری بود که اون را از وقتی که جوجهی بیش نبود و پدر مادرش را از دست داده بود با مهر و محبت بزرگ کرده بود. در دلش نور امیدی پیدا شد. نامه به پدرش نوشت و اون را از راز کریلوی قهرمان باخبر کرد. نامه را زیر بال کبوتر بس رو اون را به سمت قصر پدرش روونه کرد. کبوتر پرواز کرد و رفت و رفت تا به کاخ سزار رسید و جلوی پنجره و اتاق شاه نشست. بچه‌های ریز و درشت دربار با دیدن کبوتر دختر سزار خوشحال شدند. اون رو شناختند و به سزار اطلاع دادند که کبوتر پیدا شده. سزار اولش ترسید و گفت: "مباد و بلایی بر سر دختر عزیزم اومده باشه، چرا که این کبوتر همیشه با اون بوده." ای وای دخترکم وای میوه دلم بعد با چشمی اشکبار و دلی لبالب از اندوه دوری دخترش کبوتر رو گرفت و بوسید و نوازش کرد و یک دفعه زیر بال اون نامه دید با شتاب اون رو برداشت و با دیدن از خطا امضای دخترش بسیار خوشحال شد و خدا را سپاس گفت و با خوندن خبر کریلو شادیش چندین برابر شد و ای برای اون درد خانمان پیدا کرد. سزار پیران و خردمندان شهر رو جمع کرد و ازشون پرسید آیا جوون قدرتمند و شجایی به نام کریلو رو میشناسند یا نه؟ اونها گفتند او رو میشناسند مردی قویه و کنار رودخونه کار میکنه. شای از اونها خاص پیش اون برند و خواهش کنن که برای آزادی دخترش تلاش کنه. اونها همه گی کریلو رفتند و دیدن چرم چرمگاف رو به تو تواب رودخونه میشور و آماده کار میکنه. یک دفعه یک پیر مردان از حیبت اون ترسید و صرفه چنان بلند کرد که حواس کریلو پرد شد و چرمهای لطیفش رو پاره کرد و به این دلیل بسیار عصبانی شد و اونها رو از اون خونه بیرون کرد. سزار این بار گروهی از جوونها رو نزد اون فرستاد تا به اون کار رازیش کنند، اما اون همچنان از پاره شدن چرمهاش ناراحت بود و به اونها اجازه سخن نمی کرد. جوونها هم دست خالی و شرمگی نزد سزار برگشتند. سزار که نومید و تنگ دل شده بود، بار سوم گروهی از کودکان رو پیش کریل و فرستاد، با و گریه کنن شاید دلش به بیاد و قدم جلو بذاره کودکان رفتند و با خواهش و گریه فراوون اون رو راضی کردن که برای نجات دختر سزار اقدام کنه اون نزد سزار رفت و گفت من حاضرم برای کشتن ما رو آدم اقدام کنم اما شما باید دوازده گاریه پر از و دوازده خمره پر از سمق به من بدید تا در نورد خودم از اون استفاده کنم. سزار دستور داد اون رو که خواسته بود و براش فرهم کنه. کریلو تمام اون نخوا و رو در هم آمیخت و پوششی زخیم و نفوظ برای بدنش درست کرد و به سمت مار حرکت کرد. مار آدم خار اون رو از دور دید و پرسید جوون نادون برای آشتی نزد من آمده ای یا جنگ کریلو. داد زد برای جنگ با تو آمدم تا مردم از شر وجود تو آزاد کنم جنگ آغاز شد و مار هر چه کوشید اون رو نیش بزنه نتونست چرا که پوشش زخیم نخ و سمق مانع نفوز دندان های اون می این نبرد پنج روز به طول انجامید نبردی شدید و مرد افکن اما سرانجام کریلو پیروز شد مار را حلاک کنه و دختر سزار رو نجات بده و به قصر پدرش برگردونه مردم کیف پیروزی کریلو کجامیاکا رو جشن گرفتند و جایی را که او کنار رود دنی پرزندگی میکرد کجامیاکی نام گذاشتند کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانه ای نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نقطه ام ای نشانی وبلاگ ما ام tقطblGFA نقط مهران دوستی. کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی.